پس من من احترم الناس این من هم مبتدا هست میدونید چیه در من یکن اجولن من میشه مبتدا یکن میشه خبرش خود دوباره اسم خبر داره یک اسم یکن میشه هوا اجولن میشه خبرش پس یکن با اسمش با خبرش میشن خبر مبتدا اولی میشه خبر مبتدا اولی اسم یکن میشه هوا اس نکون هو میشه مستتر در یکن به من در میگه خبر برای ممنون بله دوم یانی چیه کدم وجود نداره زومی من میشه مبتدا احتراما فعل ماضی میشه فعل با فایلش میشن خبر من دیگه اما مثال آخری ما تقرا اون چرا که میخونی ببینید ما تقره متفاوت هست ما تقره چه هست؟ به خاطر این که عمل تقره روی ما انجام گرفته روی چه انجام گرفته؟ روی ما ما آنچه را که میخانی پس ما اینجا مفعول میشه ما چی میشه؟ مفعول بهی هست ولی اون سه تا من اولی همشون مبتدا بودن من اینو توقف کنم اینو جوابشو بدم و الان... متاسفانه تو این درس گربلی زیاده به این که زنگ میزنند. تو عرب ادوات و شرط کما یعطی اعراب میشوند ادوات و شرط همان طوری که می آید نوود هفت الادات على زمان اگر ادوات دلالت بر زمان کرد مانند مثلی گروه اول او مکان یا دلالت بر مکان کرد مانند مثلی گروه دوم کاند محل النفس على ظرفیت زمانیه او المکانیه اون موقع این ادات محلن منسوب هستند به خاطر ظرف زمان بودن یا مکان بودن لفعل شرط برای فعل شرط ان کان تامن البته در فعل شرط چی بود تام بود ولی خبری ان کان ناقصا و منسوبها هستند به خاطر خبر بودن فعل شرط اگر اون فعل شرط چی باشه فعلی ناقص باشه پس در چهار مثال اولی متا ایانا عیننا ان اونجای که فعل تام هست ظرف زمان هستند و مکان ظرف زمان و مکان هستند متى نقشش میشه ظرف زمان منصوب اینا ظرف مکان منصوب ولی آیا عنا تکون ان یکن اینا دیگه میشن خبر فعل ناقصه پس اگر فعل تام بود اعراب دیگه ای داره و اگر فعل ناقص بود اعراب دیگه ای داره نودهش إن دلة الأعداد على حدث ان كانت مفروضاً مطلقاً في الشارك. أجر أعداد دلالات برحدث كرد ما ندي أمثلة غروصهم أيو لا ابن أيو ناف إن. كدل على ااا. أول مرة مفروض مطلق حس مفروض مطلق في الشارك. قال أبو تنفع. دلالات برحدث مكنا أيو وأيو. وا هنا مضاف بن لا يبحث. معنيش بمعني لا يبحث. تيجي. موجي ك أيو لا ایو مضافه به لعب هست به معنی چه هست چه بازی هر بازی که باز... هر بازی که به معنی بازی هست بازی هست حدثی هست یا نیست بله میگه اون عدات شرطی که به معنی حدث باشد ایو هست ایو به معنی چه هست حدث هست. چون مضافه به مستر شده هدف این کار حادثه فعالیت حادثو هم نمیدونی تو فحدث حادث فحدث حادث فقط ایومی تونه دلالت بر حدث کنه از اینا باقیه نمیتونه بله دلالت بر حادثه بریم جلوتر بریم جلوتر نوادلوه این دلت على حال اگر اون عدات شرط دلالت بر حال کرد مانند کیف ما تو کیف ما یکونه امسله گروه چارون فی محل نصف علال حال محلل منصوب هست چون نقشش حال هست امکان فعل و شرط طالع. اگر فعل شرط فعل تام میبود وخبرا لفعل الشرط إن كان ناقصا وأجر فعل الشرط ناقص بود ما كيف ما يكون المعلم يكون تلامذه دارين حالات خبر كذي نخش وائرابه أن تي مشي خبر مشي خبره من فعل ناقص مشي فاس كيف ما يكون المعلم كيف ما مشي خبره يكون شو مارس كي كقواعد سادون كي امسلی گروه پنجور تزینده این دلت على ذات اگر اگر ادات شرط دلالت بر ذات کرد كانت في محل رفع على انها مبتدا اون ادات محلا مرفو هست في این کاند فعلا شرطی لازمان او ناقصان او متعدین واقعا على اجنبی منها چه زمانی اون ادات شرط مبتدا است؟ اگر قیرد شرط لازم بود مانند من یک سر کلامه یا ناقص بود معنند من یکن اجولانه یا فعل شرط متعدی بود ولی این فعل مفعولون بیش بعد از خودش اومده بود این علی قبل از اون اومده بود اون این نبود مانند من احترم الناس هرکس احترام کنه تیرا پس احترم فعل متعدی هست ولی مفعولون بیش هست ناس پس در این حالت من میشه چه؟ مبتدا. پس سه حالت اون ادات شرط مبتدا میشه. زمانی که فعل شرط لازم باشه، زمانی که ناقص باشه یا زمانی که متعدی باشه ولی مسئولش بعد از خودش ذکر شده باشه. وفي محل في في محل نصب الا انها مفعول به ان كان فعل شرط متعديا وكان على معناها. و اون ادات شرط در یک حالت میگه مفعول به هست. میگه وفی محل ناس محلن منصور هستون داد شر ما ده ما تقرع یفید که بخاطر که مفهول بهی هست چه زمان امکان فعل و شرط متعدین زمانی که فعل شرط متعدی باشه مانند ده و واقعا على معناه و این فعل واقع بر چی باشه بر معنای همون ما قبلش ما تقرع آن شراک بخانی هر شراک بخانی خاندان روتی واقعه شده. بله در حالی که در من احترام الناسا احترام هم احترامهم فلمتعدی بود ولی واقع بر چی شده بود؟ بله بر بود بر موقع بر معنای موقع نش بر گشت بر معنای موقع نش بر ولی در ما تقرب بله پس اینا سه تا قاعده بودن که الحمدلله توزیشون رد شد خدا را